جلسه چهلونه همه این این مسئله... اینه که یکی از این مسئله این بود که اگر اختلاف در این باشه که شخصی میگه چیزی رو من فروختی و دیگری ادعا بکنه که در شده این مسئله اهمیت داره همه جهاتی جهاتی که به فنون اصولی و فقهی برمیگرد اینو لازمه که یک تبیین دوباره برش بکنیم که اون مطالب مهمش برای اون که نشیدن واضح باشه که حکم و به انهول و قال اهدهما به ایتو که اجاریت به مهت مقال الاخر و هفتنی یا اختلاف بین به ای اوهبه در این موارد کی بگی؟ مالا غیر از این نظری که در کتاب اومده و نظر بعدی اصفا باست نظر فنی مستطفیم چند نکته ها مست یعنی اختلاف مؤتی و معطاله فی نوع ال اعتاق این ها حتما اما کنم من فرصت نشد بنویسم ولی حالا تو های سابق هست تا این میتونید پیدا کنید قبلا دو بار ما این مسئله رو نمیشنید اگر معطی با معطاله در نوع اعطاء اختلاف دارن آیا نوع اعطاء بی بوده یا هبه بوده این یک مسئله سیالی از اینجا که در این بحثی کنیم در خیلی از موارد پیش میاد نزیه این مسئله که اختلاف معتی و معتاله در نوع اعتاقه معتی میگه من فروختن با یک سبب معینی به بهی بوده به هرچی بوده معتاله میگه هدیه کردی حالا در این موارد طبق نظریه که مطرحه اگر بیانه ای بر یکی از این دو عنوان بیگ یا به اقامه نشد مال برمیگرده به مالک اولش مال برمیگرده به مالک اول با اینکه ما قصد داریم به اینکه از مالک اول جزمن منتقل شده به دو بول. چرا باید برگرده به اولی خوب نه آیا مخالفت با علم تفصیلی نیست علم تفسیلی داریم از من، این یقینا منتقل شده حالا به کدومش به چه نوعی این اختلافیه آیا این به نحوه هبه بوده یا به نحوه بی بوده ما الان پولش رو یا نه چیزی تلبکار نیستیم قایلا به اینکه برمیگرده به مالک اولش برگشتن این مال اینطور اختلافی اختلاف در نوع ایزا برمیگرده به مالک اول با اینکه مخالف با علم تفصیلی ما انت... به انتقال جزمی میشه حالا اگر قد اطلاقا هستند باشه کما اگر ما قد داریم این یقینا منتقل شده به یک شخص دومی حالا یا به نحوه هبه بوده یا به ای بوده اون اختلافیه. اگر قد اطلاقا هستند باشه حکمه به اینکه مال برمیگرده به مالکش به مالک اولش چه توجیهی داره یا باید بگیم قرد مطلقا خود نداره فیل جمله یا اینکه اگر قرد برای مطلقا خود باشه وجه این حکم چیه دو تا این مسئله مستبطن دو فرض این دو تا شیخ میشه براش فرض فرض اول اینه که قایل بشیم به اینکه هبه جاعز است فرض کنیم این هبه ای که داره ادعا میشه هبه جایزه است نه هبه لازمه هبه جایزه مثل مواردی که به غیر زیرحم بود به رفیقش هبه کرده بود به همسایهش به کرده بود نه به فامیل و بود اگر به جایزه باشه مثل اینکه به غیر دیرحم باشه در این موارد اختلاف یکی از نظریات نظریه مرحومای خویی اینا چون مستلقن بعضی نکات کلیدیه داریم مییم به ارتباطی از این جهاد به چندتا مطلب سیاد داره نا میخوایم معلوم بشم مرحوم آقای خوری قایدن به اینکه رجوع مال به مال که اول اونه که یقین داریم از شما تنبی شده بود رجوع مال به مال که اولش موافقه با موقع یه همین طورت باش مال برگید به مال که اول وقتی اختلاف دارد در اینکه این هه بوده یا به بوده بعد به شخص موتی و این موافقه با واقعا هست قطع به خلافش هم نداریم به خاطر اینکه اگر این معامله هبه بوده واقعا اگر هبه بوده واقعا یا هبه بوده یا به بوده دیگه ما گرم بلدونه نداریم یا هبه بوده یا به بوده اگر هبه بوده نفس تدایی و کشمکش و اختلاف نفس تدایی و نفس اختلاف از طرف یکی از این دوتا رجوع در است اگه هبه بوده داره میخواد دیگه این فروخته بودم یعنی من هبه نکرده بودم لذا نفس تدایی از طرف این شخص موتی چیه رجوع در هویه است میونه هبه نکردم از کجا معلوم این حرفو میزنه به خاطر اینکه میگه من فروخته میگم بس هبه رو منگره و انکار هبه رجوع در هبه است اگه هبه یا بوده الان آقا برگشته میخواد میخواد بفروشه اگه پولیش داری بدی باشه و این داری باید برگرد مالکش لذاب برگشتن این مال در این موارد به مالک اول طبق واقع به خاطر که نفس تدائی و اختلاف از طرف این شخص موطیر رجوع در هبه حساب میشه اگر واقعا بوده و مقتضای رجوع در هبه عود مال به ماله بشه. این بنابر که این واقعا هبه بوده ولی اگر واقعا بی بوده این احتمالا بررسی میکنیم که اگر واقعا به بوده چی میشه چطور باید برگرده به ماله و چه نتیجه برش متعدده میشه در این شیخ اگر این واقعا بی بوده باشه مفروظ اینه که بایع حق فسخ داره اگر راضی به ثمن نباشه اینو قائلی یا قائل اگر شخص بایع راضی به ثمن نباشه حق فسخ داره لذا تدایی این شخص معطی با معطالع فسخ معامله حساب میشه و اگه به هم در واقع بوده الان داره فسخ میشه این بین نخواد این نمیخواد پول بده و وقتی مثمن از شخص رفته زمان بهش نمیخواد برسه اینو میتونه فسخش کنه چون میگه من یه فروختم طرف میگه شما حقی کردی چیزی نمیخواد به این بده خب من مصمن رو دادم ثمن و من نمیخوام بدم این فسخ میکنم و این حق در همه موارد ثابتی دیگه من چیزی رو فروختم به من در مقابلش پول نمیخوام بدن وقتی نمیخوان بدن فسخش کنم کاری به زمان هم نداره ولو صد سال بگذره سرد سال گذشته پول به من ندادن الان فسخش میکنن پس برمیگرده باز به مالک اولش لذا بر مای خویی قائل به اینکه رجوع این مال به مالکه یعنی به موتی این طبق واقعه میخواد حبه باشه واقعا میخواد بی باشه واقعا لذا رجوع میشه طب قاعده حالا این فرمایش مرمایه پویی یا تمامه از حذر فقهی یا نتمامه کاری نداریم ولی در سابق اینو مناقشه کردیم گفتیم این نیست ما دو فرض درست کنیم یا هبه یا بی پس بگیم در هر دو بر به مال که اول. اینو قبلا مناقشه کردیم الان دیگه متعرضان نیستم فرض دوب اینه که هبه هبهی لازمه باشه کنابرا فرض لزوم هبه بحث کنیم کما این به پسرش پدرش آمیلش به, عمش به اینها هبه کرده بود هبه لازمه حالا اومده دیگه من این اگر چیزی رو بزرهم هی بگیردیم بعد اومدیم دعایه بگیردیم چی میشه؟ برگرد به مالک اول یا نه؟ خب مشکور فتواهش نینی که بر به مالک اولش نداشت طلب از معطی و معطالع فی نوع اتا برمیگرد به مالک اول یعنی به معطی بدون خوره به تفصیلی در مقام و تشریحی در فروز مثلی اگر هبه لازمه باشه یعنی به زیره باشه خب در این موارد یک بحثی مطرح میشه چون به زیره همه نیست که ما بگیم حجوع هست و بر به نه کار مشکلتر میشه کی رو به پسرش داده یا به پدرش یا برادرش یا همهش خالدرش مرانه اومده بگیم اینو فروختم در این موارد هم مشکله لذا باید تشخیص بدیم در این موارد اختلاف آیا باب تدایی یا باب مدعی و منکر کدومشه تشخیص باب تدائی و باب مدعی و منکر خودش از اهم مباحث قضایی حساب میشه که در فقه منفر که ما بتونیم تشخیص بدیم این از باب تدائیه میگن یا از باب مدعی و منکر میگن کدومشه الان اون فرقی که مثلا نفتار مدفعه می کنه خب فرق بین تدایی و مدعی و منکر قایل نشدن گفتم ما برگرده به موطی با اینکه نیست در یک فرزش که به غیر زیده هم خوندیم به زیده همش اینطوریه که باید تشخیص بدیم از کدوم بابه های باب تدایی یا باب مدعی و منکره این بحث فقیه سیال که ارتباط وسیقی هم به موارس قضایی داره این در فرم مقصره وینده اصل بحثش بحث قضایی تایا این رو از باب تدایی بگیریم یا مدعی و منکر بگیریم ما یا میاری داریم که دا تشخیص بدیم میاری هست ما تشخیص بدیم از باب تدایی ازا تدا یا فی امر یا باب مدعی و منکر بگیریم از بحث های سیال و خیلی مهم که نیاز به یک میاری داره برای تشخیصش و این یقین بدونن آقایم بعضی از موارد دونی طلبه هایی 20 سال سی سال درس خوندن میاری برای تشخیص باب تدایی و مدعی با ممکن ندارن پس این نکات خیلی مهم اگر کسی یک سال هم وقت بذاره اومش تدفیم دوبای تشریف در یه میاریست بله باب مدعی باب منکر و از باب تدایی کدوم میشه های هر دو مددائی هر دو مدعی یا نه یکی مدعی یکی منکر خب باب یک اثر برش مترتبه. اگر هر دو مدعی باشه ولی اگه باب باب مدعی و با مانکر باشه علال مدعی اون چیزی که ثابته و این از مانکر ابنس میخوره ولی اگر تدایی باشه نه تحالف و امثال این هست این بحث رو در جزوهای های این اینطوری بحث کردیم یعنی مبسوطم بحث شده آنجا حالا فرصتی نبود پیدا کنم آیا مدار در تشریص مدعی و منکر؟ مدار در تشریص مدعی از منکر؟ آیا به دعواس یا غرض دعواس این همون بحثی که ما میگیم عنوان زاد که صاحب جواهرین رو در کتاب الاجاره مطرح کرده میتونید مراجعه کنید کتاب اجاره و بزنید بیاد دیگه نمیدونم معیار و مدار در تشخیص مدعی از منکر آیا مسبب دعواست یا قرار از یعنی ما ظاهر ببینیم یا واقعه رو ببینیم دو نظریه بعضی میگن ما ظاهر میبینیم این میگه فروختن اون میگه هبه کردی هر دو مندقی این ظاهرش این ادعای به ادعای به این ظاهر ظاهر قضیه نیدی هر دو منتقیم. ما ظاهر رو ببینیم یا واقع رو ببینیم واقع یعنی چی یعنی اون شخصی که مدعی جهاد هست چی میگه مستعیدم اون شخصی مدعی بیعه برای چی میگه قرذش چیه این قرذ از این دعوا رو بگیریم یا اصل دعوا رو بگیریم ما ظاهرو رو بگیریم یا واقع رو بگیریم ببین الان ظاهرش اینه که عرضو مدعیه که مدعی بیعه که مدعیه بس از نظر امام قائلا به این مدار در تشخیص مدعی ازمون و مثب درواز این ظاهر قضیه ظاهر قضیه اینه که هر دو مدعی وقتی هر دو مدعی باشن هر دو یک عنوان وجودی رو دارن ادعا میکنن که یکی بی باشه و یکی به اصلا در عناوین موجودی ادمشه اصلی اینه که بی نباشه. از چی نگه به نباشه فهمان متداریان اگر ظاهر اقلی رو شما بگیرید این دو نفر الان متداری هست چونه میگه من بیره اون میگه به کسی هر دو مدعی یک عنوان وجودی هست هر دو مستعی هست در قالب اختلافات دادگاهی هر دو مستعی زن هم مردم مستقیه. حالا ما این ظاهر رو بگیریم که رو ادعا دادم یا نه قررز از دعوان رو اینا چرا اینطور میگن چون بعضی از موارد شخص میگه به من فروختی که میگه هبه کردی چرا میگه فروختی با اینکه فروختن لازمش شنید که پول بده این شخص راضی پول بده ولی ادعای خودش که بیعه ثابت بشه نه هبه حالا به قرضی میخواد بگه شما اینو به من اون چیز که الان مثلا که شخص مادهی اندوپی میگه فروختم معطله میگه نه هبه کردی برعکسش هم میشه معتی میگه هبه کردن معطله میگه نه فروختی چون اگه هبه باشه حالا یه فرانتز باشه بعضی از موارد اگه فروش باشه میبینی فروش مال عادیه جرم حساب میشه شخص میگه نه من هبه کرده ب اگه هبه باشه فروش مال پی بهش نمیدن پس این کتاب منو برداشته هیوه کرده به کسی این جرمش سنگین نیست ولی که فروخته باشه فروش مال پیه لذا بای اون معطی میگه نه من نفروختم من هبه کردم نمیدیم منجا بله درگشت ما به مارکی آفر رو می توانید توشی کنید این که اینکه به بوده که محاوض بوده سال بوده می خواهم بیدید اگر هم هر اگر می افت دو طرح با رسارت درد می کنم رسارت پس ما الان می به همون نتیجه برسیم بگیریم می خواهیم چی میشه آخرش این برگرده به مارک اول تپه واقع هست یا واقع نیست این نظریه همی می آنه شبه شما بعدش می دونید اگه چیزی در ذهنتون هست فعلا می بگیم که اگر شخصی به کرده به زیر رهیم الان اختلاف دارد. در این موارد این از باب تدائیم یا ممکنه. تشخیص باب مکره و باب منطقی از منگر منطقی منگر این منطقی به اینی که ما یک مبنای رو در باب قضا استهزار داشته باشیم یعنی معلوم باشه که مبنای ما مثب دعواس هم یا قرص از در. اگر مثب دعوا باشه یعنی ظاهرشو نگاه کن هر دو مستقیبی که عنوان وجودی است و هر عنوان وجودی از علم نه به این ثابت میشه نه به اون یکی ثابت میشه فهم و متدائیان وظیفه متدائیان تحالف وقتی تحالف شد مال برمیگه به به مالک اولش واقعا نظاهرن به زا قطع به خلاف نداره این این نظریه که از باب تدایی سردر میاره ولی اگر گفتیم معیار در تشخیص در قراز از دعواز نه مثل خوظاهر یه بگیم هر دو مستقیه عنوان موجودیه نه این حرفان نیست قراز رو باید بریم چرا این شخص میگه فروختم؟ چرا اون شخص میگه هبه کرد قراز هر کدوم از این دو نفر چی بوده اونه که معیار میشه برای حکم حاکم در این موارد اختلافی اگر مدار بر قراز دعوا باشه نه بهش و مفتوز اینه که آقای این براجعه کنند به کتاب لجاره جواهر آجا ببینند قراز مدعی به دو جور تصور میشه شخصی که مدعی بیه قرضش دو جور تصور هم میشه اولش اینه که قرضش الزام دیگری به زمن باشه چرا منطقیه بگیه برای که یه پولی گیرشیه قبلا هبه گذه بود الان میگینه من فروخته بودم مثل خیلی از مواله اتفاق میفت حتی بین طلبان طلبه چیزی رو هبه میکنه بعد از پنه سال که زنش در جامبت و زهره و خودش در حوزه به اجتهاد نسری میرسد میگن اما ما به نکرد ما اینو کار سانده بودیم و سه مورد اتفاق افتاد من خودم میگم چیزی که هبه کردم در میگردم و این از خوردن زهر مار برد روایت داره روایت داره کسی چیزی رو هبه کرد برگردونه انگار اون چیزی که مار قیل کرده اونو میخواد بخوره چرا ما قد چون نظر بالا میانیم اینها چه اخلاق هایی تو ها این تاکسی دیدین بچه از موارد شخص پول و پرت نظر بنداز یعنی چی چی گفته بنداز سندو گذشت کن بگو نمیخوام اینا رو باید بگن یه باید بگم شما وقتی طرف پول نداره بگو نمیخوام. تازه اونم که دارید برای خودت بمونه خسلت های خوب تو جامعه اصلا نوش نمیکنه. ما آخه یا نوکنیم بندان سن سوال برد هر گذشت بهتر از آنیم دیدید شما برخورد کردید پول نداره بندان سن صدا ولی اگه بگه من نمیخوام گذشت میکنم سوابش بیشتر چون در این موارد میشه انفاق و گوزهش در موارد میشه صدقه که اوزها و خناس. ولی خب همه چیز رو ما چپکی میپرد خیلی کنم با آقای شای نداریم شخص پول نداره بگو نه یه بار ما یه دفیقی داشتیم همارشه بودیم داشتیم میومدیم، از قدری میومدیم به مسجد های پایانی کنار این مسجد نو ی شخصی بود و جا شیر میفروه صبح و این غفیر ما مرتزم به صبحانه بود یعنی جونشم میدرد صبحانه رو باید میخورد چیست دن بود منم اعتقاد نداشتم صبحانه باشه نباشه مهم نیست خصوصا در دیرون آخون نباید چیزی بخوره. اون میخورد بعد پولش به مقدار شیر بود دو تا قرد از این چیزه برداشت و مرد گفت پولیشو نده دید. گفت ندارم گفت بده قرده از دهانش در بود یعنی اینقدر ای آدم خبی سوزن شده بود درم بود ما تداره بودیم لباس نداشتیم مده مرمون تداره این اینطوریه مردم حالی شما به توان این برسان چی میشه همین جورن یا یه بار من خودم رسول بیدم فرما بخرم یه دون فرما رو میداز یاد میشون بر میداش کم میشون خود <تصفيق> حالا در این موارد این اختلاف که این شخص مستهیبه میخواد دید طرف دیگر رو الزام به سمن بکنه بگه ما باید پول بدید چرا هبه؟ پول میخواد قرزش اگه الزام به سمنه و دیگری میخواد از زیر این الزام در بره پول نده خب این یکی از نقاط کلیدی اختلافی بین ما و مشهوره. خیلی مهمه و اساسی هم هست یعنی نکته احساس یعنی نکته دوم احساس در این برده این چون نکته اول تشخیص مثب و غرز بود که اینه حتما هستش کنید بلو 6 ماه از وقت که نظر شما آخری چی می شاید مثب به دروا یا غرز هست مسئله دوم که خیلی اساسیه به یک اختلافیه به این بین مشهور و این کلام که می <تصفح> و در شرح نومه این مراجعه کنید نوع با ساوی مشهور مشهور ده. یعنی در با معاملات آخرین فرقی که من زنیمان شهید ثانی و شهید اول نه اختلف خلاف ها در مزارعه مصابات هم ساوی این ها و در خبه امری این کتاب دوباره بخونه چه کتابی بوده چقدر ظلم میشه در حفظ کتاب با اون هواشی خیلی خیلی خوبی که داره در خارج خیلی به توان شرح دومه و هواشی سلطان و آقا جمال و دیگر هم میرسن هرچی بوده تو این کتاب بوده و بعضی از موارد میگن بعضی از خوبه ها قایل به اینکه اگر کسی شرح دومه رو فوب بمونه با معالم مشهده میگن نه نمیشی چرا نمیشتاده بیشترم از خیلی مطلب داره حالا در این موارد شخص مدعی به میخواد مقابل رو الزام به سمن بکنه و دیگری میخواد از زیر این باره رو الزام خلاص بشه در این موارد چه کنیم؟ میعا چیه؟ آیا اون چیز که جاری میشه اصل شرعیه که ما یا اصل اوقلایی کما بناینا علیه سابقه در این موارد چی بگیم؟ مشهور میگن اصل شرعی جاری میشه <coughs> یعنی در تهدید مدعی و مونکر میگن اصل شرعی جاری میکنم ولی ما گفتیم در مقابل این اصل شرعی اصل اقلاعی داریم اصل شرعی یعنی همون براعت اشتغال و امثال اون به درد باب قضا نمیخوره باب قضا موازین خودشو میخواد میزان در این موارد اصل و قناعی. حالا از بیرون من بگم شخص مدعی حبست و شخصی مدعی بیر اصل شرعی عدم شما این هبه نکرده. عبدشریم میگه هبه نکرده دیگه. ولی از ذقلاقه میگه اصل اینی که اینجاست. در این مواردی که ما داریم مثال میزنیم زنیم، مدعی بیه و مدعی هبه است. اصل همین یاد نف میکنه و نفیش مثبت بی. یعنی عدم بی یعنی هبه ثابته. هبه ثابت بشه از عدل دیگه ولی از چوغلهایی میگه نه از چوغلهایی میگه کسی هبه نمی کنه یعنی اصل عدل مجانیت از یعنی شخص مفتی چیزی به کسی نمی شخص مفتید شخص اصل از زمان ازتا آدم بوده یکی کسی این ادم ها رو میاریم دیگه. الان ببین بحث ما در چیه در مدعی بیه در مدعی بی داری بحث در مدعی بیه اون تحالف که تمام شد دیگه تحالف تمام شد که متداری بودن الان مدعی بیه مدعی بیه چیه؟ از دیگری پول بگیره از شری میگه پول بگیر از عدم بگه بنابراین شما از اون تلکه ها ولی میگن نه اصل اینه که شما مفتی چیزی با کسی نداده باشه اصل اقلاعی نه اصل اقلاعی عدم هبه است هبه دیگه اقلاعیه حالا در این موارد درست شرعی رو ما اجرا کنیم یا اصل اقلاعی رو در نوع کلمات شهید سعید ثانی اصل شرعی مراجعه کنید تمام مسائل اخلافی در اون بال معاملات آخرین مسایلی که مزنید چه همش اصل شرعی میاد اصل عدم و متاخلین هم اونتون. و هر تا معاصلین ولی میار به نظر من اصل اقلاعیه در این موارد اصل اقلاعیه میگه اصل عدم حیبه است شفت مفتی چیزی رو بگرسی نده ازا بهی تابت میشه نه حیبه حالا این رو مصطفا در جزوه های سابر نوشتیم الان هم داریم از بیرون میگیم برای اینکه مراجعه کردی پیدا کردید برای فردا باز, باز نمیسی میکنیم به یه بیان دیگه غیر از اون بیان قبل در تهدید مدعی و منکه در این موارد که قرز ملاکه ما بگیم از شرعی از اصل, اصل اغلایی اگر منات اصل شرعی باشه کما علیه مشهور اون شخصی که فکر یه این پول بگیره قولش مخالفه است قولش مخالفه است که دیگه میخواد اینکه از براعت ظلمه مقتاله پس نگو این چیزی به دکار نباشه بزنش لذا مدعی به واقعا میشه مدعی چرا؟ چون مدعی شما دیگه قولش مخالفه است مخالف اصل شرعی الان میخوانیم در مواردی که از رو میخوایم ملاک بدونیم الان شخص مدعی و منکر و امسالین های دو نفر درقا کدوم مدعی که قولش مقدم بشه یا مؤخر باشه و کدومش منکره شما این مخالف اصل بودن موافق اصل بودن رو با کدوم اصلی های بسنجی اصل شرعی یا اصل اغلایی این شخص مدعیه به قولش مخالف هست به خاطی از براعت ذمه معطاله هست اونه که الان این مال در دستش لذا مدعی به در واقع میشه مدعی مدعی به میشه منجر چرا به خاطی این از ادعای به امتار اشتغال ذمه خودش به ثمن لذا قول شخص مدعی هبه مقدم میشه اگر بیانهی برای شخص مدعی هبهی نماشه چون این شخص قولش مخالفه, مخالفه اصل دیگه مخالفه اصل شدیه قسم میخوره و قولش مقدم میشه ولی اگر معیار اصل و قلایی باشه در تشریح تمدید و منکر ما چون چیزی که در لو معمونی اینی که قول منکر مقدم میشه تو موافق با اصله بدون است از شریعت و قلائی اگر مدار بر اصل و قلای باشه اصل شرعی تقریرش اینه که هیچ عاقلی از و قلا طبیعتاً اقدام بر تملیه مجانی نیمی بلکه اقدامش همیشه بر تحریزه تملیه مجانی در بین وقلا نیست لذا اگر دو نفر تنازع بکنن معتی بگه من قرض داده بودم معتاله بگه هبه بوده در این موارد اصل وقلایی با مدعی قرضه و قرض قرضه مفتی از دستش در نه چون هبه باشه دیگه برده نمیگرده یک قرض باشه برمیگرده و ظاهر حال اغلا که تمدید مجانی نیست لذا مدعی هبه میشه مدعی و یه نباید بیاره مدعی قرض این حالا طب این طبیلی بله بله بله تعارز از ظاهره اونمه خواستم آخری شدیم که در کلمات معروف به تعارض اصل با ظاهر و مشهور قایدن به تقدیم اصل بر ظاهر ظاهر شدون میبینی همان از دو قدام حالا یا فرقی داره یا فرقی نداره در دو پیشه فرق داره اون دو پیشه قبلا نلوشید بین ظاهر و اصل قلایی که ما گفتیم در دو نکته فرقه ما اون خاطر تغییربدر نکردیم حالا کسی بخواات مراجعه بکنه به این نحوه تعارض اصل و ظاهر در کلمات می بینید انتحان مشهور قاره به تقدیم اصلا و ظاهر الا اینکه قریمه باشه برای اینکه ظاهر مقدمه و همون از ظاهر با این اصل که قلایی که گفتیم فرق داه. بذاید دو تا نکته رو تحقیق کنید شما که به پیشرفته ترین نمیدونم گوگل دنیایی درسته بزنید بیاد مدعی با منکر مثب و غرض و امثال اینها از سوغلایی اصل شرعی ظاهر با اص اینا بیاد بعضی از خلوعاتشو پیدا کنید حالا قبلا وعده داده بودیم بعضی از موارد تعالیز اصل و ظاهر رو بگیم اگه یادتون باشه وعده کردیم که روز بعد بگیم برای خوب روز بعد نشد و حالا فرمان این رو ذکر میکنیم بعضی از فروعات رو از ابواب متعدد هم از افواب تهارت تا آخر از ابواب متعدد میانیم که دو چیز برای طلبه ها جا بیفته یکی ذهنیتی پیدا بشه بر, بر جستگی، بحث مذهب دعوا و قرز از برجسته بشه دوزه چون چیزی برجسته نشه فایده نداره به صورت کیت فاید باشه مهم اهمیت داره و اجازه عناوی اصلی خبر اینا بعد دومین مطلبم تفکیک فقهی و قضایی بین اصل شرعی و اصل خلایی نوعه پیدا بشینستان بین ها و الان میشه از روی کتابا بخونیم بریم و کسی اینا رو نشه ذهنیت میخواد تمام نیرو در درس ها باید به طرف این باشه که طلب ذهنیت پیدا کنه حالا مطلب ضمیرش به کجا برمیگرده اون از صاحب ضمیر باید بشه مهم اینه که طلب ذهنیت پیدا کنه بدون اینکه در موارد اختلاف میتونه مذهب مورد نظر باشه کما علی سید الامام یا قرض مهم باشه کما علی سید صدر و خیلی از بابه ها مثل سات جواهر بین اصل و ظاهر یا اصل و اصل شرعی و اصل فرد، غلایی هست در یکی این ور میشه مدعی در اونی که اون یکی, یکی میشه مدعی ما کدوم و مدعی کنیم وقتی صاحب شرای میگه قول موافق اصل مقدم میشه چون شخص منکر حساب میشه کدوم اصل اصل و اصل شرعی و اصل و غلایی ظاهر چه فرقی داره اینها رو یه ای ذهنیتی پیدا بشه خودش قوهیه قوهیه حالا مطالب رو دیر یا زود شما یاد میگیرید ولی مهمه که ذهنیت پیدا کنید اصل عدم خب شرعیه دیگه براعت ذمه شخص از این پول. نه دیدی که الان دو تا نکلی متفاوت گرفتیم ببین ما میخوایم در مقام محاکمه قول معافظه اصل مقدم میشه و نوعا اون منکر دیگه کدومشونه این مدعی به یا مدعی به اگر قراز رو در نظر بگیری فرق کرد همین یاد میگیم پس دو تا مصدر رو تحتیل یعنی پیش مطالعه بشه برای فرق. یکی که بین مصد دعوا و قرض از دعوا دوم تفکیه بین اصل و ظاهر ظاهر یعنی الان تساموهن اصل و بنابی. این این دوتا اصل خود به شما معیار میدونید قول موافقه با اصل میگن یعنی مقدم میشه دیگه اصل رو چهار تا تفسیر تا حالا خوندید برش و این چهار تا تفصیل هم پیدا کنند در شروع شرایع هست در شروع مختصر و نافه هست در شرح دوم آورده چهار تا معیار برای اینکه شخص وقتی میگم موافق اصله دوم هست چهار تا نظریه براش هست اینها رو پیدا کنید. البته سابقا ما هفت تا نوشتیم تو جزه. ولی حالا اون چیزی که در کتاب هست چهار تا نظریه متداول می و هست یعنی پیدا کنیم این تا فردا این سه چیز باید پیدا بشه یکی اینکه که موافق اصله کدوم اصل دوم که فرق بین اصل و ظاهر سوم مثب و قرار است خودومشی می ایار بدونیم در اینها ما نتونیم به مبنا برسیم یعنی میگه ذهنیتی نرسیم پیشترسی نداریم و انده هم که ما بخوایم مدلا کتابی بخونیم تا ده روز مهمون شماست شما بگي تا یک سال مهمون شماست این مرسی که شما همه اینا رو حفظی دستم سناکه حافظ قرآن ولی نه ذهنیت مبنایی میخواد چون فرده قفیم مسائل رو از خودت جواب ذهنیت زه طبقه کدوم مبناه میخواید این حرف رو بزنید چی میخواید جواب بدین؟ شخصی اختلاف دار و میگه به این میگه نه بس نظر خود شما چیه چی باید پاشه کدومشو میپسندی طروب شما باید یافت بگیریم این این سه تا مطلب رو تا فردا پیش متعاده بشه و از جوزه های سابقا پیدا کنید اگر کسی هم پیدا کرد ثواب داره که ثواب اون رو صفحه بیش کسی بیشت ب نوشت مطلبی رو خوشخط به بیا بیاره کنه دیگر هم استفاده کنن که زکات و علم نشتون. این سوابهایی کم آقایی اعتنا نباشن میبینی همین شما رو پیشرفت میده ما لازمی سطمن بریم بیمارستان بسازیم چیزی که میخونین یادداشت داشتون بیا به دیگری هم بهده استفاده کنیم برخم بره